مایا الهه تبخون بازار تارس امشب میخواهم بحثی پیرامون مایا به ارتباطات میندی آن بر مبنای فرضیه نسبیت داشته باشیم از هنگامی که آنشتاین فرضی نسبیت را تدبیر کرد تقریبا در هر کتابی درباره موضوعات علمی و فلسفی در غرب ارجاعی به اصول نسبیت مشاهده میشود اگر قرار باشد کتاب را که در باب این مقوله نگارش شده اند و یا به آن ارجاع کرده اند شمارش کنیم به جرأت میگویم که عدد آن به 25 هزار میرسد بهره فلسفه از فردیه نسبیت جهانبینی مشهور مایا به تفسیر شانکا چاریا است ممکن است فهم آن را دشوار بیا هرچند چون آنچه را به معنی مقیاس یا ابزار اندازه به اندازه‌گیری بشماراوی، موضوع بسیار ساده خواهد شد. علم فیزیک نوین قطعا از قدرت کل یا آموزش‌های منفی مشتق می‌شود. در با اصلاح ابزار اندازگیری خود، آغاز به کار می‌کنند. موضوع مطالعه علم جدید خود طبیعت نیست، بلکه مشاهده ما از آن است. قانون طبیعت عملا اسرار چندانی از طبیعت فاش نمی‌کند بلکه یقینا گویای اسراری از بشر خواهد بود اطارات ما درباره جهان در واقع نظریات ما درباره خودمان است آنچه بشر در مسیر متعارف زندگی تجربه میکند، چیزی نیست جز تجربه مطلق در شرایط ویژه. طبیعت عوامل ای به عنوان مکان و زمان نمی‌شناسد که فقط در یک تسلسل چهار بودی معنا داشته باشد لذا مکان و زمان در یک الحاق تفکیک نافذی رو از یکدیگر محصولی خلق می کنند که ما آن را فضا زمان نام میگذاریم. مشاهده بشر این واقعیت واحد را به دو بود جداگانه به نام فضا و زمان تقسیم می کند و جدایی کازبی ما بین این دو بود قائل می شود قانون نسبیت با معرفی و تفهیم زمان نسبی تقریبا فرضیه تکامل داردین را که بر مبنای مفهوم مطلقی از زمان بنا شده بود جایگزین کرد. قوانین طبیعت توضیحی به معنای گستردی کلمه به ما ارائه نمی دهند. با مطالعه و تحقیق در قوانین طبیعت می توان فهمید چه رخ خواهد داد اما نمی شود دریافت چگونه و چرا؟ قاضی نصفیت نسبیت میگوید قوانین پدیده‌ها در نظام کالیبرهای فیزیکی برای ناظری که به آن وابسته است علی اینکه کل نظام ساکن یا در حرکتی یکسان و متشابه و تغییر باشد تفاوتی نمی‌کند تونانچه این قانون را به روانشناسی اطلاق کنیم به این معنی خواهد بود ما فقط می از حضور صورتهایی از حیات لطیف و نامرئی آگاهی حاصل کنیم که متجانس با صورتهای حیات خودمان باشد این فرضیه ضمناً به روند ترکیبی وحدت نقاط نظر گوناگون مقتنی است و عملیات تحلیلی منجر به تفکیک و تمیز آنها از یکدیگر این نظریه امکانات رسیدن به حکم قاطعی را بررسی می‌کند که با انتقال پدیده از یک نظام به نظام دیگر معتبر باقی بماند نیروها عموما به طور مصنوعی و با تغییر دادن مختصات به پدیده اعمال می شوند بنابراین وقتی بشر یک فاصله اک می شود تغییرات عظیمی در مختصات کالبدی و میزانهایش مشهود می شود نیروهای تازه و زندگی تازه آغاز به نظم گرفتن می کنند حوضه های نیروی جاذبه دقیقا مترادف با نیروهایی هستند که در اثر تبدیل مبدع مختصات و مقیاسات به پدیده اعمال می شود به این معنی که به محض اینکه که بشر به روح یا خدا بیندی نظام مختصات یا زندگی جدیدی خلق می کند یا وارد نظامی با مبدأ مختصاص یا زندگی جدیدی می شود و سیرت او به عنوان یک بشر نیروهای جاذبه و معیارهای زندگی قدیمش به کلی تغییر خواهند کرد نیروهای جاذبه و مختصات جغرافیایی نواهی طبقات، اماکن و زمینههایی که این نیروها در آن کار میکنند های متفاوت از یک پدیده واحدند یعنی حوزه های جاذبه و حوزه های نیروهایی که به طور ارادی به منظور تغییر مختصات یا زندگی اعمال میشوند همسانند یک حوزه جاذبه را میتوان با ساروب یا کالبد و جامعه ماهانتا مقایسه کرد یا نیروی که به طور ارادی به انگیزش باکتا یا نیروی عشق و و موجب تغییر از زندگی پیشین به زندگی فعلیش شده است مترادف با یک حوزه جاذبه عمل می کند. نوع آموز طریق باکتی باید به خاطر داشته باشد که حوزه های طبیعی جاذبه نمیتواند از مداری که ماده جذب کننده وجود دارد خارج شود. بنابراین باید دست از جذب و دفع بردارد و به خدا تسلیم شود تا شاید به حوضه جاذبه بالاتری صعود کند فرضیه نسبیت ثابت می کند که مسیر یک شعاع نور بستگی به جغرافیای های فضائی دارد که آن در حرکت است نه فضای ثابتی وجود دارد و نه هیچیک از دستگاه های مختصات عالم تغییر است کمیت هایی که در نقش کسرت آفرینی مورد نیاز انصار درونی به مرحله ظهور می رفند در عین حال نشانگر حوزه های جاذبه در هر ناحیه ای هستند ستارگانی که ما می بینیم آنجایی نیستند که می بینیم نور آنها در اثر عبور جوار میدان نیروهای جاذبه خورشید می میابند این واقعیت با عکس برداری از ستارگان در هنگام خورشیدگرفتگی گرفتگی ثابت شد انواجی که از فرستنده رادیویی ساطع ساته می شوند هنگامی که به حوضه های مغناطیسی ایجاد شده توسط آنتنهای رادیوها و یا تلویزیون ها می خم می شوند. به همین ترتیب نور روح در اثر حضور کسانی که دوستشان داریم یا از آنها متنفذیم انهنا ها تلیم ماده هم ساختاری منحنی دارد هرچه ماده بیشتر در کائنات باشد، انهنا هم به میزان بیشتر می شود بنابراین اعضای خانواده های بزرگ و کسانی که به سوی آنان جذب می شوند، در فضاهایی با انهناهای بیشتر به سر می برند. این همان اصلی است که شانکاچاریا و پادیست می نامند هرچه انهنای فضا بیشتر باشد امکان خم شدن آن روی خودش بیشتر است و در نتیجه کیهان کوچکتریاست همان گونه که هرچه میزان انهنای محیط یک دایره بیشتر باشد آن دایره کوچکتر است فیزیک نوین تمایل دارد معمای کل عالم ماده را با فرضیه موجی حل کند موج و بس این امواج از دو گونهاند یکی محبوس که ماده یا جیوان هم دارد و دیگری انبواج آزاد که نور یا بهاگوان نامیده می شود. روند انهدام ماده در واقع رها کردن انرژی موجی محبوس در ماده و آزاد کردن آن برای سفر در فضاست. این مفاهیم کل عالم را به جهانی از تشعشع یا هستی تقلیل میدهند. دیگر جای تعجب نیست که مشاهده شود ذرات بنیانی تشکیل دهنده ماده همان خصوصیاتی را از خود بروز دهند که در موج مشهود است این بدان معنی است که هر جیبایی درون در خود صاحب خصوصیات خداست اگر بدانیم که یک الکترون در نقطه معینی از فضا قرار دارد قادر نیستیم سرعتی را که با آن در حرکت است دقیقا مشخص کنیم این جیبایی که در تعلق کالودی باشد معمولا قدرت خود را نمیشناسد تا به آن را گسترش دهد به همین ترتیب چنانچه سرعت دقیق یک الکترون را شناسایی کنیم طبیعت اجازه نخواهد داد موقعیت دقیق آن را در فضا کشف کنیم پس خدا نمیتواند در یک مکان خاص موقعیت یابد و اگر هم بتوانی موقعیتی برایش تعیین کنی گونه که در ساگونا اوپاسوبا قادر نخواهی بود حرکت نامحدود و حضور مطلق و گریم ساروف او را همزمان درک کنیم مشاهده شده است که ماده و را به طور مساوی در قالب موج توجیه می بنابر این خدای حاضر مطلق واقعیتر از خدایی است که در یک مکان استقرار گزیده باشد صورت نفسی، جیوا یا ماده در مطلق حضور ندارد ماده چیزی جز تجربه مطلق در جلوه ویژه نیست به این ترتیب برای صورت نسبی نه دلیل مطرح است نه و علت آن معلوم است هیچ مقصودی ندارد و پایانی هم برایش متصور نیست نمیتواند چیزی به جلال و جبروت خدای مطلق بیفتاید چون خودش همیشه جلوه حضور خدای مطلق است بشر با ساختن عوامل نسبی از پدیده هایی که صرفا زاییده ارتباط نسبی آن پدیده ها با خودش می باشند هیولاهایی می که از آن پس در افق فلسفی به آزارش می پردازند نیکوزشت واقعا برای ارزیابی و تعیین روابط بین اشیا برای بشر کافی است مطلق کردن آنها مشکلاتی غیر قابل حل و فائق نیامدنی خلق می کند. مطلق حقیقتا ماورا نیک و زشت قرار دارد نسبیت بر تمامی عوالم سه طبقه تحتانی حاکم است آنچه برای یکی درست است برای دیگری غلط است هیچ چیزی به خودی خود درست یا غلط نیست به دینگونه آنچه برای یک مرید وظیفه درست محسوب می‌شود، برای یک خانهدار یا یک جنگلبان نادرست است هیچ طرح یا ای از قواعد به خودی خود درست یا غلط نیست جهانبینی ضد خشونتی که توسط بسیاری از هندوها می می‌شوند، برای کسانی که در سیستم طبقاتی بودند خوب است مقابل اطلاق به مردمی که صاحب خانواده و مسئول خانواده اند، نمی باشد کسانی هم که گوشت میخورند نخواهند توانش از آن پیروی کنند فیزیک نسبیت می‌گوید عالم غیر مکانیکی است زمان مکان علیت حرکت جرم نیرو و غیره همه نسبی هستند و هیچ ماهیت مطلقی ندارند اینها کیفیات واقعیات فیزیکی نیستند بلکه اثباتاتی هستند که قدر مطلقشان در رابطه با نحوه برخورد ناظر با آنها تغییر میکنند این درک نهایی و کاملی از عالم است که فراسوی ارتباطات فاعلی و مفعولی قرار دارد تغییر مختصات بوذه جاذبه ایجاد میکنند کانون تعلقات ما باید به نظام کل عالم انتقال یابد ارزش کل بالاتر از مجموعه ارزش آن است. فلسفه با احساس جامعیت آغاز می شود هنگامی که اک خود را در جهان محسوسات پیدا می کند شعف محاسن بیدار می شود بنابراین شیء جامد و روح نادیدنی یکی هستند مرگ و اغمهلال در میان ما خواهد بود چون ما از روی قفلت خود را انسان میپندارید در حالی که بجز خدا روح تنها باقی جاویدان است اشیا آنچه به نظر می آیند نیستند یک مطلق در کل عالم وجود دارد لذا ما باید در عمق هستی در جستجوی آن براییم اشیایی که ابتدا خود را به توجه ما عرضه میکنند کنند عموما نسبی هستند تشمنداز های زیبایی که به هنگام تحریک انواج نور آگاهی ما را انباشته می سازند هیچ ارتباطی با واقعیت جسمانی ندارند برای کسی که رنگی داشته باشد این حاله ها صورت دیگری دارند بشر هیچ چیز درباره طبیعت و سازمان واقعی اتم نمیدانند. تنها چیزی که او شناسایی کرده است تشعش و ایست کردان ساته می شود اما هرگز به منشه آن تشهر رو دست نیافته است ما هرگز نمی توانیم یک الکترون را در یک لحظه از همان الکترون در لحظه دیگر تشخیص دهیم چون در این بین از خود انرژی ساطع کرده است عقل سلیم حکم می کند که الکترون نتواند خصوصیات جسم را داشته باشد بلکه صرف ناحیه یا است که انرژی از آن متشهرشه می شود تشعرشو هم عبارت از دست ای است است که آخرین نشان دریافتیان در مغز ناظر در حال تحقق می باشد مانند امواج در آب حرکت می کند اما به خورده هایی به نام فوتون یا کوانت های نور تقسیم می و به محض برخورد با ماده به صورت ذره ظاهر می شود بنابراین انگامی که چیزی را می بینی که خیش حقیقیت نیست است. که به ماده تغییر شکل داده یعنی ناظر به جیوا تغییر شکل یافته است وقتی خدا را در همه جا ببینیم سدی وجود نخواهد داشت و مسیر تشعشو محدود نمی شود انواج صرفا ان انواجی ریاضی و صاحب واقعیات فیزیکی نیستند. فرایند تشکیل انواج نور فقط به واسطه تأثیر آنها بر چشم اعصاب بینایی یا مغز به ظهور می رسد این فرایند‌های حسی خود امواج نیستند این تصیرات آفرینش منطقی منطقی توست طبیعت در ذاتش صادق است و فقط آنگاه که ما در جستجوی چیزی برمیآییم که در آن نیست در پشت حجاب ظاهر پنهان می شود. تفکیک در نقط نظر نه از دانشی است که میل به فراتر رفتن از تفکیک وجود می کند. تبدیل کردن فضا به یک عامل متغیر یعنی وارد کردن یک به ذهنی به آن که ها نیاز به تعبیر مجدد پیدا می کند همانقدر حقیقت در جهان فیزیکی یافت می شود که طرق ممکن برای مشاهده اشیا اندیشیدن به اشیا جدا از بشری که در حال مشاهده آن است تفکر انتظائی است و باعث ایجاد دو نهایت می شود امکان ندارد که یک نهایت بدون نهایت متضاد داشت وجود داشته باشد. در یک شیء هرگز مستقل از شرایطی نیست که بر مشاهدگر حاکم است. جهانی که بشر معمولی میشناسد جهان حواست است، آنچه پنج ه به امین نمایانند مبنای جهان او را تشکیل میدهد. اگر زمین مستح به نظر میآید اما در واقع گرده است، چنانچه به نظر ساکن میآید وریکن همواره در حرکت است، باید گفت که خطا ظاهرا در وجود مشاهدهگر و حواس وی است که دائما در حال شکل دادن و ارائه این تصویر به اوست ما تصور خود را از جهان همه جا با خود همد می کنیم. ما یک دریافت انتظایی از کلیه ظواهر زواهر ممکنه یک شیء میسازیم و بعد ادعا می کنیم که ما آن را دیده ایم. تفاوت زیادی بین حقیقت و تجربه حقیقت وجود دارد نقطه نظر حقیقی دیدگاه کل است نقطه نظر کاذب دیدگاهی است از هر یک از نقاط عالم اولا مطلق و حقیقی است آنچه در ظاهر بلافاصله اشیاء دیده می شود در واقع تصویر ذهنی است از آنجا که تماما ذهنی است فاصله زیادی با خود ذهن ندارد ذهن ناآگاهانه دریافتهای خود را به درون فضا منعکس می کند سپس ساختارهای خود را نظاره می کنند. افکار یا مشاهدات ما از این اشیا در واقع تجربه ما از آنهاست است و این افکار هیچ جایگاهی در فضا ندارند یک کور پس از عمل جراحی و بازیافتن بینایی ابتدا تصور میکرد کرد اشیاء چشم او را لمس می کنند. او قادر به ارزیابی کوچکترین تواصل هم نبود و نمی توانست به که اشیا بیرون هم قرار دارند علت کسرت دیدن این است که به تجربه آموخته این ناآگاهانه فقط آن چیزی را انتخاب کنیم که با آن علاقه مندیم. ممکن است مشغول به کاری باشیم و صدای زنگ ساعت را نشنویم هنگامی که به آنچه می بینیم هیچ توجهی نکنیم آگاهی ما از آن تخفیص یافته و تا حد صفر می رسد در حالی که اندیشه یا شیعه که توجه ما را در خود جمع کرده است به وضوح هرچه بیشتری می رسد. پس این ذهن است که عالم را می سازد تصاویر از تجربه حاصل نمی شوند بلکه خود ایجاد کننده تجربه هستند فکر ما را به اصارت گرفته و فکر هم می تواند ما را آزاد سازد دانش نسبیت افثانه ای را که حاصل استنبات مشترک متعارف بشر از آلم بود از هم پاشیده است دیگر دنیا به خودی خود یک واقعیت سلب و یک توده ملموس قلمداد نمی شود. هر اندیشه و عملی که کوشش در بقای حتی فیزیکی دارد یک اطلاف انرژی و یک فرصت از دست رفته برای توسعه مینوی انگامی که ماده توجه ما را به خود گیرد روح خداوندی پس میکشد. یک اندیشمند می در طلب تصدیق حواست فیزیکی است تا آن را به قماش اصلی روح خداوندی تعبیر کند ادینگتون می‌گوید، عالم مطلق از طبیعتی آنچنان متفاوت از طبیعت نسبی عالمی است که ما با آن آشناییم که این جهان به نظر رؤیا می‌آید. بنابراین آگاهی مطلق کل عالم از همه چیز ناآگاه است درست همانند قیاب کیهان بیرونی به عبارت دیگر عالم درونی و بنابراین انباشته از قماش خداوندی است فرهنگ غرب آموزش می دهد که تو باید حاضر باشی به خاطر کشورت بمیری این فلسفه است که مرگ را بر میلیون ها نفر روا می دارد به این خاطر که از روحهای ملی تقسیم شدهای شکل گرفته است حکمت خداوندی میگوید همه باید آماده زندگی برای خیرات همه مخلوقات خدا باشند کدام بهتر است و جامعیت بیشتری به زندگی میبخشد دیکتاتورها و سیاستمداران صاحب حکمت نیستند آنها باید نقطه نظر نسبی خود را به دور بیندازند و در محضر قدیسین حکمت جامعه خداوند را بیاموزند فقط آن است که قادر خواهند شد مشکلات دشوار بشری را هموار کنند یک فرهنگ غنی همه را برادران یا همسان خیش می دانند. تنها با رواج فرهنگ خدایی می توان جنگ ها را برای همیشه متوقف کرد نبا پیمان های نوشته بر برکاغت در قیاب خدا همه جفته ها و تقسیم بندی ها وجود خواهد داشت و در های اقتصادی و روانی همچنان به خلق آشوب ادامه خواهند داد چاره حقیقی آن نابود کردن منفیگری و کوشش در تأمین حس برادری و عشق بین آدمیان است. در غیر این صورت ملل قدرتمند همچنان در شکار ضعیفترها مشکلاتی پایان نپذیر خلق می کند. آدمی فقط یک نوع از خودخواهی را با نوع دیگر آن عوض می کند یک عمل در زندگی فرگی بسیار مضمون و ناشایست قلم داد می شود در حالی که وقتی به نام یک ملت انجام شود مورد ستایش قرار می گیره. خشونت ملی هم حاصل کارمای خود را دریافت خواهد کرد تا روزی که جوانان در اصول خدایی تعلیم داده نشوند و فعلی جهان همچنان برقرار خواهد بود بشر باید یک طبعه جهان شناخته شود و در صدد رفع نیازهای همناع خود براید، نه هم وطن خود. به هر حال، تمامی امور سه جهان پایین دومین بخش اعظم هستی، زیر حاکمیت نیروهای منفی خلقت قرار دارد، و همیشه در وضعیت سیلان و تغییر باقی خواهد بود، گاهی از نیکی به بدی و گاهی بلع. قضیه نصفیت با استفاده از معادلات ریاضی به روشنی ثابت کرده است که فضا و زمان پدیده های ثابتی نیستند بلکه کمیتهایی نسبی بوده و آدمی می‌تواند آنها را افزایش داده نظام موجود را به دلخواه خود و در راستای مراجع فلسفی ناظر تغییر دهد و امکان آفرینش یک بهشت به دنیوی را میسر سازد زندگی بشر با مردن برای هیچ علتی بهتر نمی شود او میتواند تواند برد فضوزمانی خود را گسترش دهد مشروط بر اینکه به خاطر تمامیت بشری یعنی نیت خیر و یاری به تمامی مخلوقات خدا زندگی کند.